بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلاح على سیدنا محمد و علیه القاهرین مهربان را پاس که در جلسه ششم از سلسله جلسات واجبات دینی رسیدیم هو العلم الدرس السادس و العدو درس ششم عدل و نبوت و پیانبری علیف العدل یعنی ان الله تعالی عادل حکیم لایقل معحده قطعا خداوند متعال عادل هست و حکیم هست ما برای بسیاری از شبهات اگر کلمه عدل را خوب باز کنیم می توانیم پاسخ بدیم ولی حکمت را اگر عدل بپیوندیم و اضافه کنیم این به زودتر پاسخ گفته میشه مثلا برای نمونه اگر بپرسن که چرا من نسبت به فلانی از این نعمت برخوردار نیستم خب این سوالات جوابش با همه مسئله عدالت و مخصوصا با اضافه کردن واجه حکمت بسیار راحتی قابل حل است <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> این الله تعالی عادل حکیم قطعا خداوند متعال عادل هست و حکیم هست لا یظلم احدا ظلم نمی کند هیچ کسی را و لعن بالمین فی القرآن الكريم. و خداوند متعال ظالمان را در قرآن کریم لعنت فرموده است و الله سبحانه وتعالى لا یضیع. حقوق و اجر احد و خداوند سبحان و خداوند متعال زایع نمی سازد و عجر هیچ کسی را و این اکرم الناس به سبحانه و تعالی و قطعا مکرمترین مردم با ارزشترین مردم خوبترین مردم به تقوا و پرهیزگاری از برای خداوند سبحان و متعال هست اون که پیشه کرد از خداوند متعال ترسید و اطاعتش فرمود اون شخص اکرمترین و محترمترین مردم خواهد بود پس طی این متن سه نکته است. یک خداوند متعال عادل و حکیم هست و هیچ کسی رو مورد ظلم قرار نخواهد داد نمیدهد دو چگونگی ارت... ارتباط چگونگی عمل کرده خداوند متعال با ظالمین واضح هست که خداوند متعال نسبت به ظالمین برخورد شدید داره و آنها را مورد لعنتش قرار داده است. سه خداوند متعال هیچ هیچکس را نمی نمیسازه، حقوق هیچکس را زاین نمیسازه. این در قسمت بالا گفته شد و نکته سوم این که اگر بخواهیم تفاوت های بین مؤمنین را درک کنیم و ارزش مؤمنین را پی ببریم، ارزش مؤمنین با افزایش تقویش هست. هر که بیشتر تقوی پیشه کرد، ارزش منتر خواهد. با النبوه رسیدیم بحمد الله تعالى در قسمت نبوه انبیا الله تعالی كلهم می نبي عليهم و عشرون الف نبی می او اربع خدابند متعال كلهم همهشون می او اربع او ایشورون غلف نبی 124 هزار پیغمبر هست علیه مسلم چرا این پیغمبر را لی هدایت ناس الی سقاده تا مردم را برای لی برای هدایت مردم ال سقاده و سعادت و نکبختی خوشبختی. و اول الأنبياء نبی الله آدم ابو البشر عليه السلام اولین پیامبر از پیامبران پیامبر خدا حضرت آدم ابو البشر عليه السلام هست و آخر الانبیاء سیدنا محمد ابن عبدالله رسول الرسول الأكرم صل الله عليه و عليه صاحب شریعت الاسلام و آخر, آخر الانبیا و آخرین پیانبران سیدنا آقای ما محمد ابن عبدالله حضرت پیامبر محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیه الرسول الکرم اون فرست شده با کرامت صلی اللہ علیه است که صاحب شرعت الاسلام صاحب شرعت اسلام هم هستند. نکته که در اینجا هست این است که دین خدا اسلام هست و همه ادیان الهی اسلامند، اما شریعتشون فرق می شده بعد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هم نام دینش نام دین که اسلام است و هم نام شریعتش اسلام است. کل الانبیاء انبیاء الله تعالی حقا همه پیامبرم پیامبران خداوند متعال هستند بدون شک و حقیقتا بلکه شریعت ما و ما اسلام و اسلام است و نبی یعنی پیامبر ما محمد ابن عبدالله صلی الله علیه حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه هست که حضرت سید سفراء، آقای فرستادگان و خاتم النبیین و پایان بخشان بیا والمرسلین و فرستادگان الهی هست. صلی الله علیه و آله. اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجهم.